بوم شده در کتابخانه خانم علم بله نورا چی شده؟ تاریکه توجه شده بودم این نشونه خوبی نیست مگه نه؟ خانم علم با خستگی گفت نه خودت کاملا میدونی که نشونه خوبی نیست دیگه نمیتونم ادامه بدم همیشه همینو میگی دیگه زندگی کم او بردم. هر چیزی که به ذهنم رسیده شدم با این حال همیشه برمیگردم میگردم همینجا. همیشه یه چیزی هست که باعث میشه دیگه لذت نبرم. همیشه احساس میکنم قدر نشناسم. خوب، نباید چنین احساسی داشته باشی. زندگیم کم نیاوردی خانم علم مکس کرد تا آه بکشد میدونستی که هر بار کتابی رو انتخاب میکنی دیگه به بر نمیگرده؟ آره؟ برای همین هیچ وقت نمیتونی برگردی به زندگی که قبلا امتحانش کردی. همیشه باید یه جور تغییر کوچیک توی یه زمینه وجود داشته باشه. توی کتاب ی نیمه شب نمیتونی یک کتاب رو دوبار بخونی. متوجه تو نمیشم. خب، حتی توی این تاریکی هم میدونی که قفصها کاملا پرن. درست مثل آخرین باری که نگاهشون کردی؟ اگه دوست داری میتونی خودت بهشون دست بزنی تا مطمئن بشی. نورا به کتاب ها دست نزد. آره میدونم که قفصه ها پرن. دقیقا مثل اولین باری که اومدی اینجا همه ی قفصه ها پرن. مگه نه؟ نمی... این یعنی هنوز هم تعداد زندگی های مختلفی که میتونی امتحان کنی درست اندازه همون اول کاره. یعنی بی نهایه. هیچ وقت احتمالات پیش رود تموم نمیشن اما اما میشه که خود آدم دیگه اونا رو نخواد وای نورا چی شد؟ در تاریکی سکوت برقرار شد نورا دکمه یک ساعتش را فشرد تا مطمئن شود خانم علم سرانجام گفت امیدوارم از این حرفم ناراحت نشی اما فکر میکنم یکم راحت رو گم کردی مگه از اولم برای همین نیومدم کتابونی نیمه شب که راه زندگیمو گم کرده بودم. خب آره اما حالا توی همون گمگشتگی قبلی هم گم شدی. یعنی دیگه خیلی زیاد اینطوری نمیتونی مسیر زندگی مطلوبت رو پیدا کنی. اگه اصلا روحی وجود نداشته باشه چی؟ اگه گیر افتاده باشم چی؟ تا وقتی که هنوز توی قفس ها کتاب هست. یعنی گیر نیافتادی. هر کتاب یه راه احتمالی برای فراره. نورا با بعد گفت مشکل اینجاست که اصلا زندگی رو درک نمی کنم. نیست درکش کنی. فقط باید اون رو زندگی کنی. نورا سرتگان داد. درک این حرفها حتی برای فارغ‌التحصیل و رشته فلسفه هم سخت بود. نورا گفت اما نمیخوام اینطوری باشم، نمیخوام مثل هوگو باشم، نمیخوام تا ابد بین زندگی های مختلف جا, جا بشم. خیلی خوب، پس باید به دقت حرفامو گوش کنی. میخوای نصیحتت کنم یا نه؟ خب معلومه که میخوام، البته به نظرم دیگه دیر شده، ولی آره، خانم ممنون میشم اگه در این باره نصیحت هم کنین. خیلی به نظر من به جایی رسیدی که دیگه به خاطر درختهای زیاد اطرافت جنگل رو نمی بینی نمی منظورتون چیه حق با توه که این زندگی ها رو مثل پیانویی می که پشتش نشستی و آهنگ هایی رو میزنی که اصلا شباهتی به خودت ندارن داری خودت رو فراموش می با تبدیل شدن به همه کم کم هویتت رو از دست می‌دی. داری زندگی اصلیت رو فراموش میکنی فراموش میکنی که چی برات مفید بود و چی نه حسرت هات رو فراموش میکنی حسرت همو زندگی کردم نه همشون رو نه خوب اون کوچیکاشو دیگه نه زندگی نکردم باید دوباره کتاب حسرت ها رو بخونی توی این تاریکی چطوری کتاب بخونم؟ خودت از قبل تمام کتاب و حفظی چون درونته درست درست مثل من یاد زمانی افتاد که دیلن گفت خانم علم را نزدیک خانه سالمندان دیده میخواست این حرف دیلن را به او بگوید اما نظرش عوض شد درسته ما فقط چیزهایی را میدونیم که درک میکنیم هر چیزی که تجربه میکنیم در اصل فقط درک و تعبیر خودمون از اون چیزه اون چه که نگاهش میکنی اهمیتی نداره. اون چیزی مهمه که میبینی. حرفای رو میدونین؟ معلومه. تا وقتی تو بدونی من هم میدونم. مشکل اینجاست که دیگه نمیدونم از چی پشیمونم و چه حسرتی دارم. خیلی خوب. بذار ببینم. میگی که من فقط یه تفسیر از چیز دیگه ای هستم. اما چرا منو تصور کردی؟ چرا منو به شکل خانم علم میبینی؟ نمیدونم چون بهتون اعتماد داشتم با هم مهربون بودین مهربونی نیروی قدرتمندیه و گاب. ممکنه تا الان جای اشتباهی رو گشته باشی شاید لام های کتابخانه تا کم کم روشن شدند و تاریکی از میان رفت خب توی زندگی اصلیت دیگه کجا این مهربونی رو حس کردی؟ نورا یاد شبی افتاد که اش در خانهش را زده بود. شاید این کار عش آنقدرها رومانتیک نبود که جسد گربهی را از توی خیابان برداشت و زیر باران به حیات پشتی کوچک خانه نورا آورد و بعد به جای او دفنش کرد. چون خود نورا کمی مست بود و گریه می کرد. اما مطمئنا مهربانی محسوب می که چهل دقیقه از وقت ورزشت بزنی و به یک نیازمند کمک کنی و در ازای کارت فقط یک لیوان آب دریافت کنی. نورا در زمان درست نتوانسته بود قدر مهربانی اش را بداند. غما اندوهش خیلی شدید بود. اما حالا که به آن فکر میکرد کار اش واقعا چشم گیر بود. گفت، فکرم فهمیدم شب قبل از اینکه خودم رو بکشم درست جلوی چشمم بود منظور دیروز اصره فکر کنم آره اش همون جراحی که ولس رو پیدا کرد سالها پیش هم یه بار ازم دعوت کرد باهاش قهوه بخورم اون موقع با دن بودم و خوب به خاطر دن بهش جواب رد دادم اما اگه با دن نبودم چی؟ اگه قبلش از دنجو داده شده بودم و این جرأت رو به خودم میدادم که یه روز شنبه یه چشم همه مشتریهای مغازه دعوت اَش رو به قهوه قبول کنم چی؟ چون مطمئنم زندگی وجود داره که اون لحظه توش متعهد نباشم و حرف دلم رو بزنم. زندگی که توش بگم آره دوست دارم یه موقع با هم دیگه قهوه بخوریم، اَش. زندگی که توش اَش رو انتخاب کردم، دوست دارم اون زندگی رو امتحان کنم تا ببینم منو به کجا میرسونه. در تاریکی صدای آشنای حرکت کردن قفس کتاب را در ابتدا آهسته و بعد سریعتر و روان تر شنید تا اینکه خانم به علم کتاب زندگی مد نظر را روی قفسه دید درست اونجا. مرواریدی در دل صدف، از خوابی سبوک بیدار شد چشمانش را باز کرد و نخستین چیزی که فهمید این بود که به شدت خسته است میتوانست در تاریکی قاب عکسی را روی دیوار ببیند تا حدودی میتوانست تصویر عکس را هم تشخیص دهد و متوجه شد شبهی مات از یک درخت است نه از آن درخت های بلند و باریک درختی کوتاه و عریز و پرگل مردی کنار نورا خوابیده بود از آنجا که پشت به او خوابیده بود و تا حد زیادی زیر پتو مخفی شده و اتاق هم تاریک بود نمی‌شد با اطمینان گفت این مرد اش است یا نه به طریقی این حقیقت برایش از همیشه غریب تر بود البته مشخصا خوابیدن کنار مردی که پیش از این فقط یک بار گربه ای را با هم دفن کرده بودند و چند باری هم از پشت پیشخان مغازه لوازم موسیقی مکالماتی جالب داشتند در شرایط عادی کمی عجیب غریب محسوب میشد. اما نورا از زمان ورودش به کتابخانه نیمه شب دیگر کم کم به اتفاقهای عجیب عادت کرده بود درست به همان اندازه که امکان داشت این مرد باشد ممکن هم بود عشق نباشد. نمیشد با تغییر یک انتخاب ساده آینده را پیشبینی کرد. برای مثال قهوه خوردن با عشق می توانست سبب آشنایی و عاشق شدن نورا و کسی بشود که قهوهشان را می‌آورد. طبیعت پیشبینی ناپذیر فیزیک کوانتوم همین بود. نورا انگشت حلقهش را لمس کرد. دو حلقه. مرد به سمت او چرخید. در تاریکی بازوی روی نورا قرار گرفت. اما نورا آن را برداشت و آهسته روی پتو گذاشت. سپس از تخت بیرون آمد. قصدش این بود که به طبقه پایین برود. شاید روی مبل دراز بکشد و مثل همیشه با گوشی درباره خودش تحقیق کند. حقیقت جالبی که در این مدت فهمیده بود، این بود که هر تعداد زندگی را هم که تجربه می کرد. و هرچقدر هم که آن زندگی ها با هم دیگر فرق داشتند، تقریبا همیشه گوشی نورا کنار تختش قرار داشت. در این زندگی هم مثل تمام زندگی های دیگر، گوشی روی میز کنار تختش بود. برای همین آن را برداشت و آهسته راه افتاد که بیرون برود. مرد هر کسی که بود حسابی غرق خواب بود و تکان نخورد. نورا به او خیره شد. مرد خواب و بیدار زمزمه کرد. نورا خودش بود. نورا تقریبا در این باره مطمئن بود. آش. نورا گفت: دارم میرم تشفی. مرد چیزی شبیه به باشه زمزمه کرد و دوباره خوابش برد. نورا با قدم‌های آهسته به سمت در رفت. اما به محض اینکه در را باز کرد و قدم بیرون گذاشته، نزدیک بود قالب تویی کند. چرا که در نور ضعیف پاگرد راه پله انسانی دیگر را جلویش می دید. این یکی کوچک بود. اندازه بچه. مامانی خواب بد دیدم. نورا در نور ضعیف راه رو می توانست صورت دخترک را ببیند. موهای لطیفش به خاطر خابیدن سیخ سیخی شده و چند تار از آن به پیشانی عرق کردهش چسبیده بود. نورا هیچ چیز نگفت. این دخترش بود. چطور می توانست حرفی بزند؟ سوالی آشنا و همیشگی دوباره در سرش تکرار شد. چطور میتوانست با چند سال تأخیر از راه برسد و به زندگی ملحق بشود؟ نورا چشمانش را بست. زندگی‌های دیگری که در آنها بچه داشت، همگی فقط چند دقیقه طول کشیده بودند. این یکی هم به همین زودی داشت به بیراهه کشیده می‌شد. بدنش از فشار احساساتی که سعی می‌کرد بروز ندهد می‌لرزید. نمی‌خواست او را ببیند. نه فقط به خاطر خودش بلکه به خاطر آن دختر به نظرش میآمد چنین کاری خیانت باشد نورا مادر او بود اما از یک نظر مهمتر مادرش نبود فقط زنی غریبه در خانه‌ای غریبه بود که به کودکی غریبه نگاه می کرد. مامانی صدامو میشنوی خواب بد دیدم نورا صدای تکان خوردن مرد را جایی در اتاق پشت سرش شنید اگر مرد درست و حسابی از خواب بیدار میشد اوضاع بدتر میشد بنابراین نورا به این نتیجه رسید که باید با دختر حرف بزند. نجوا کرد. وای آخی، اما واقعی نیست. فقط یه خواب بود. درباره خیرس بود. نورا در را پشت سرش بست. خیرس؟ به خاطر همون قصه. آهان، آه آره، اون قصه. خیلی خوب دیگه برو توی تختت متوجه شد لحن کلامش خشن و بی است به همین خاطر با اینکه نمیدانست اسم دخترش در این جهان چیست گفت عزیزم اینجا هیچ خرسی نیست فقط عروسک خرسی هست آره فقط دختر کمی بیدارتر شد با بهتر دیدن مادرش چشمانش برق زدند به همین خاطر نورا هم چند لحظه واقعا همین احساس را داشت انگار که مادر او بود حس عجیبی بود که به لطف کسی دیگر به جهانی مرتبط باشد مامانی چیکار میکردی بلند حرف میزد و لحنه جدی و خاصی داشت که فقط بچه های چهار ساله دارند به قیافش نمیخورد بیشتر از چهار سال داشته باشد نورا گفت هیس واقعا باید اسم دختر را میفهمید اصامی نیرومندند و اگر کسی اسم دختر خودش را هم نداند، دیگر به هیچ چیز تسلد نخواهد داشت. نورا نجوا کرد. گوش کن، من باید برم طبقه پایین و یک کاری بکنم. تو برگرد بخواب. اما خیرسا، هیچ خیرسی اینجا نیست. توی خوابم که هست. نورا یاد خیرس قطبی افتاد که در مه به سمت او می آمد. یاد ترسش و میلی که آن لحظه به زنده ماندن داشت این دفعه دیگه نیست قول میدم مامانی مامانی چرا اینجوری حرف میزنی؟ چه جوری. همینجوری؟ یواش حرف میزنم؟ نه نورا اصلا نمیدانست از نظر دختر چطور حرف میزند نمیدانست بین خودش و مادر این دختر چقدر فرق هست؟ مادر شدن روی لحن حرف زدنش هم تأثیر گذاشته بود. دختر منظورش را مشخص کرد. انگار ترسیدی. نه ترسیدم. میخوام یکی دستم رو بگیره. چی؟ میخوام یکی دستم رو بگیره. آهان. مامانی خنگول. آره آره. خنگ درآوردم دارو فوقن ترسیدم. این حرف را آهسته و جوری به زبان آورد که گویی صرفاً میخواست حقیقت را به اطلاع او برساند و آن موقع بود که نورا تازه نگاهش کرد. نگاهی درست و حسابی و بجا. دخترک برایش هم کاملاً غریبه بود، هم کاملاً آشنا. نورا جوشش حسی قدرتمند و نگران کننده را درونش احساس کرد. دختر جوری نگاهش میکرد که پیش از این هرگز هیچ کس آنطور نگاهش نکرده بود. حس وحشت بود. لبهایش شبیه لبهای نرا بودند و همان نگاه گم ای را داشت که بعضیها گاهی به نورا نسبتش میدادند. دخترک زیبا بود و دختر او بود، دستیکم تا حدودی و این باعث میشد موجی از عشق غیر منطقی به دلش حجوم بیاورد. نورا میدانست که اگر همین حالا به کتابخانه برنگردد که البته گویی قرار نبود به این زودی برگردد دست کم باید از دختر دور شود مامانی دستم دستمو میگیری من من دختر دستش را در دست نورا گذاشت دستش کوشک و گرم بود و آنقدر راحت و بیخیال مثل مرواریدی در دل صدف توی دست نورا آرام گرفت که احساس غم به نورا دست داد. دختر او را به سمت اتاق کناری راه رو کشاند. اتاق خواب خودش. نورا در را پشت سرش روی هم گذاشت و سعی کرد نگاهی به ساعتش بیندازد. اما در این زندگی یک ساعت آنالوگ با ظاهری کلاسیک و بدون نور شبتاب داشت. بنابراین یکی دو سانیگه طول کشید تا چشمانش به نور عادت کنند. محصیت میدان ساعت گوشیش را هم نگاه کرد. دو سی و دو دقیقه صبح بود. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه چه ساعتی در این زندگی به خواب رفته، احتمالاً جسم نورای این دنیا به اندازه کافی استراحت نکرده است. دستکم احساسی که بدنش داشت اینطور به او میگفت وقتی میمیریم چی میشه مامانی؟ اتاق کاملا تاریک نبود، باری که یه نوری از راهرو داخل میآمد و در خیابان هم همان نزدیکیها ها چراقی بود که نور ضعیفش از پشت پرده منقش به تصویر سکهای متعدد به داخل اتاق میتابید. تخت کم ارتفاع دختر و همچنین عروسک بغلی فیل شکلی را روی زمین می دید. اصبابازی های دیگری هم همه جا ریخته بودند، فضای درون اتاق شلخته و در این حال شاد بود. چشمان دختر رو به نورا برق زدند نورا گفت: نمیدونم فکر نکنم هیچکس کاملا مطمئن باشه که چی میشه دختر اخم کرد این حرف نورا اصلا را زیش نکرده بود نورا گفت: گوش کن قبل از اینکه آدم بمیره مهلت دوباره گیرش میاد تا از اول زندگی کنه میتونی همه یه چیزهایی رو داشته باشی که قبلا نداشتی. میتونی خود تصمیم بگیری چه زندگی رو میخوای اینجوری خوبه؟ اما فعلا لازم نیست نگران این چیزها باشی تو قراره یه زندگی پر از ماجراجویی و حیجان و چیزهای خوشحال کننده داشته باشی مثل اردو رفتن؟ نورا به دخترک بام از زب و شیرین لبخند زد و موج گرمایی در وجودش جان گرفت آره مثل اردو رفتن؟ آشق وقتایی هستم که میریم اردو. نورا هنوز داشت لبخند میزد، اما همزمان چشمانش خیس شدهاند به نظر می‌آمد زندگی خوبی است. برای خودش خانواده‌ای دارد و دختری که روزهای تعطیل با هم دیگر می‌روند اردو. نورا با درک اینکه به این زودی نخواهد توانست از آن اتاق خواب فرار کند، گفت: ببین، وقتی به چیزهایی که نمی‌دونی نگران شدی، کار خوبی که میتونی بکنی اینه که چیزهایی رو که میدونی یاد خودت بیاری. دختر گفت: منظوری چیه؟ زیر پتویش خزید. نورا کلار او روی زمین نشست. خب، مثل یه بازیه. مناشق عاشق میخوایی میخوای با هم بازی کنی؟ آره. دخترش لبخند زد. بازی کنی؟ من سوالی ازت میپرسم که از قبل جوابشو میدونی تو هم جواب میدی بنابراین اگه ازت پرسیدم اسم مامانی چیه تو میگی نورا متوجه شدی؟ فکر کنم خب اسم چیه؟ مالی. خیلی خوب. اسم بابایی چیه؟ بابایی. خب اسم واقعیش چیه؟ اش که اینطور عجب قهوه خوبی با هم کردیم. کجا زندگی می کمبریج. کمبریج تقریبا منطقی بود. لورا همیشه از کمبریج خوشش میآمد و فقط هم سی مایل با بدفورد فاصله داشت. حتما اش هم از آنجا خوشش آمده بود. به علاوه اگر هنوز در لندن کار می کند، فاصله به اندازه هست که بتواند برود و بیاید. پس از آنکه نورا نخستین دانشگاهی دانشگاهیش را از بریستول گرفت بلافاصله برای کارشناسی ارشد فلسفه درخواست پذیرش داد و کالج کیس با درخواستش موافقت کرد. کجا ای هم یادته؟ اسم خیابونمون چیه؟ خونمون توی خیابونه بول بولتون آفرید برادر یا خواهرم داری؟ نه؟ مامانی و بابایی هم دیگر رو دوست دارن؟ مالی با شنیدن این سالش کمی خندید. آره، آره، تا حالا شده داد بزنی؟ خنده مالی شیطن اتامید شد. بعضی وقتا، مخصوصا مامانی، ببخشید؟ فقط وقتی خیلی خیلی خیلی, خیلی خسته ای داد میزنی، بعدش هم میگی ببخشید. واسه همین اشکالی نداره اگه بگی ببخشید هیچ اشکالی نداره خودت همیشه هم اینجوری میگی مامانی واسه کار کردن میره بیرون آره بعضی وقتا هنوز توی همون مغازه ای کار میکنم که توش بابایی رو دیدم نه مامانی وقتی واسه کار کردن میره بیرون چی کار میکنه به مردم چیز یاد میده؟ چطوری چیز یادشون میده؟ خودم میگم. چی یاد میدم؟ فیلو، فیلو، فیلسوفه، فیلوسوفه، فلسفه؟ منم همینو گفتم دیگه. کجا فلسفه یاد میدم؟ توی دانشگاه؟ آره، کدوم دانشگاه؟ بعد یادش آمد کجا زندگی میکنن؟ دانشگاه کمبریج؟ آره همین نورا سعی کرد جاهای خالی را خودش پر برگرد شاید در این زندگی دوباره برای گرفتن مدرک ارشد اقدام کرده و بعد از اتمام دورش به تدریس رو آورده است در هر صورت اگر میخواست در این زندگی بماند باید کمی بیشتر فلسفه می‌خواند. اما بعد مالی گفت ولی دیگه گذشتیش کنار گذاشتمش کنار چرا؟ تا کتاب بنویسی؟ کتاب واسه تو؟ نه کتاب واسه آدم بزرگا من دارم کتاب مینویسم؟ آره گفتم دیگه میدونم فقط میخوام یک کاری بکنم بعضی چیزا رو دوبار بگی چون اینجوری انگار دوبار بلدیشون تازه خرسام کمتر از قبل ترسناک میشن باشه؟ باشه بابایی هم کار میکنه؟ آره؟ میدونی شغل بابایی چیه؟ آره آدم رو با چاقو میباره نورا یک لحظه یادش رفت که اش جراح هست و به این فکر افتاد که نکند با قاتلی زنجیری ازدواج کرده چاقو؟ آره بدنشون با چاقو میباره و با حالشون خوب میکنه آهان آره درسته، جون آدم رو نجات میده، آره، دقیقا، جز وقتایی که اون آدمه میمیره و بابایی ناراحت میشه، آره، ناراحت کننده است نورا یک لحظه مکس کرد بابایی هنوز توی بیدفورد کار میکنه یا شغلشو آورده توی کمبریج؟ مالی شانه بالا انداخت کم آهنگ هم میزنه؟ آره آره کلی آهنگ میزنه ولی خیلی خیلی خیلی خیلی, خیلی بد بعد از این حرفش نخودی نو خندید نورا هم خندید خنده یه آرام مالی واگیردار بود ببینم خاله و امه یا دایی و هم داری؟ آره امه جایا امه جایا کیه؟ خواهر بابایی دیگه چی؟ آره، دایی جو، دایی ایوان. نورا خوشحال شد از اینکه میشنید، برادرش هنوز در این زندگی زنده است و نیز با کسی رابطه دارد که در زندگی المپیکی نورا هم بود. مشخصا هم به اندازی در زندگی نورا حضور داشت که مالی اسمشان را میدانست. آخرین بار کی دایی جو رو دیدی؟ دایی دایجو رو دوست داری؟ آره، خیلی با است، پاندا رو هم به هم داد پاندا؟ عروسک بغلیم، پانداها ها همه یه جور خیرس هستند، خیرس های خوب مالی خمیزه کشید، داشت خوابش میگرفت. گرفت مامانی و دایی هنوز هم دیگر رو دوست دارند آره همیشه تلفنی کلی با هم حرف میزنین جالب بود نورا اینطور تصور میکرد کرد که برادرش فقط در زندگی هایی با او خوب مانده است که در آنها نورا هرگز در گروه هزار تو شرکت نکرده بود برعکس تصمیمی که در آن زندگی برای ادامه دادن شنا گرفت تصمیم قهوه خوردن با اش متعلق به بعد از زمان حضورش در هزار تو بود اما اینطوری نظریهش نقض شد نورا به این فکر افتاد که شاید مالی دوست داشتنی عامل این ارتباط است. شاید دختر کوچکش شکاف میان او و برادرش را از بین برده است. بابا بزرگ و مامان بزرگم داری؟ فقط مامان بزرگ سال. نورا دوست داشت سوال بیشتری درباره مرگ پدر و مادرش بپرسد. اما احتمالا الان وقت مناسبی نبود. تو هم خوشحالی؟ مزورم وقتاییه که به فکر نمی کنی. فکر کنم مامانی و بابایی خوشحالن مالی آرام گفت آره بعضی وقتا وقتایی که خسته نباشی با همدیگه خوش میگذرونیم مالی چشمانش را مالید آره حیبون خونگی هم داری؟ آره افلاتون افلاتون کیه؟ سگمون افلوتون چه نژاد سگیه؟ اما دیگر جوابی نگرفت چون مالی خوابش برده بود نورا هم همانجا روی فرش دراز کشید و چشمانش را بست وقتی بیدار شد زبانی صورتش را میلیسید یک سگ دور با چشمان کشیده و خندانش به او نگاه میکرد و از دیدنش انقدر حیجان زده یا سرگرم شده بود که دمش را تکان میداد نورا خوابالود گفت افلاتون؟ افلاتون دومش را تکانی داد، انگار میخواست بگوید خودمم صبح شده بود و نور از پشت پرده ها به اتاق میتابید عروسک های بغلی متعدد از جمله پاندا و فیلی که نورا هنگام ورود به اتاق دیده بود همه جا روی زمین پخش بودند نورا به تخت نگاه کرد و متوجه شد خالی است مالی در اتاق نبود و صدای قدمهایی هایی سنگین از قدم های مالی از سمت راه پله میآمد نورا سر جایش نشست. میدانست به خاطر آنکه شب را با تیشرت مارک کیور که برایش آشنا بود و شلوار پیجامهی با طرح چهارخانه خانه که آشنا نبود روی فرش خابیده، حتماً ظاهر آشفتهای دارد. دستی روی صورتش کشید و فهمید پوستش به خاطر چسبیدن به فرش چروک شده. موهایش هم که در این زندگی بلندتر بود، کثیف و شلخته شده بود. سعی کرد در همان دو ثانیه‌ای که تا رسیدن اش مانده بود، کمی ظاهرش را درست کند. همان عش که نورا هر شب کنارش می خوابید و با ورود این تا به حال کنارش نخوابیده بود. به بیان دیگر، شوهر شرودینگر. بعد ناگهان اش رسید.